سلام. شما قسمت سوم پادکست الف رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از یک نمایشنامه است. تو هر قسمت از این پادکست خلاصه یک نمایشنامه رو به بهترین شکلی که تونستیم براتون تعریف کنیم، ولی خوب معنیش این نیست که جزئیاتی از قلم میفته و شما تقریباً نمایشنامه هر قسمت رو به صورت کامل میشنوید. حالا اگر دوست داشتید میتونید برید و نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون بخونید. توی این قسمت هم مهدیس سفری برامون نمایشنامه دستهای آلوده سارت رو با ترجمه جلال آل احمد خلاصه کرده که نشرهای زیادی نمایشنامه رو با این ترجمه منتشر کردن. به خاطر همین ما استثنا این قسمت منبع و نمایشنامه که خودمون استفاده کردیم رو معرفی نمی کنیم. از مهدیس ممنونم که زحمت بسیار زیادی برای متن طولانی این قسمت کشید خلاصه و روایت این نمایشنامه اینقدر طولانی شد که ما تصمیم گرفتیم در دو قسمتون رو براتون پخش کنیم و طبیعتا خلاصه کردنش هم زمان بسیار زیادی رو از ما گرفت پس این قسمت رو بشنوید ادامهش رو هم همزمان با همین قسمت روی فیده الف قرار میدیم که بلا فاصله بتونید ادامهش رو هم بشنوید پادکست الف رو لطفا از اپ های پادگیر مثل کست باکس یا اپل پادکست گوش کنید. و شبکهای اجتماعی پادکست رو با آدرس الف پادکست در توییتر، اینستاگرام و تلگرام پراموش نکنید در نهایت بهترین و تنها راه حمایت شما از الف، معرفی و اشتراک گذاری الف برای دوستانتونه امیدوارم خوشتون بیاد و برای دوستانتون هم بفرستید بریم سراغ سارت و دستای آریده نمایشنامه این قسمت پادکست الف دست دستهای آلوده نوشته جان پول سارت فیلسوف معروف فرانسوی سارت در سال 1905 در پاریس و در یک خانواده بورژوا متولد شد در سال 1922 به دانشسرای عالی پاریس رفت تا در رشته آموزگاری تدریس کنه جالب بدونید سارت در دانشگاه امتحان نهایی فلسفه رو رد شد اونم به خاطر اینکه اعتقاد داشت فلسفه فهمیدنیه نه حفظ کردنی به هر حال سال بعد یعنی سال 1929 در امتحان فلسفه نفر اول شد و رتبه دوم این امتحان در اون سال به سیمون دوگوار فمینیست معروف و نویسنده کتاب جنس دوم رسید و این آغاز آشنایی و رابطه مادام العمر این دو نفر بود که البته هیچ وقت با هم ازدواج نکردند چون ازدواج رو یک امر بورژوایی می دونستن. بعد از فارغ تحصیلی و چند سال تدریس سارت با یک بورس تحصیلی راهی برلین شد و اونجا بود که آشنایی عمیقی با آثار و اندیشه های مارتین هایدگر، فیلسوف و اگزیستانسیالیست و ایتبون هاسرل فیلسوف و پدیدارشناس پیدا کرد. اما بعد از یک مدت به خاطر شرایط آلمان و حکومت نازی دوباره به فرانسه برگشت. اکسیستانسیالیسم که بیشتر از هر کس دیگه ای به اسم سارت شناخته میشه رو میشه خیلی ساده اینطوری تعریف کرد که انسان مسئول کارهای خودشه و باید تلاش کنه تا به زندگی خودش معنا بده. سارت میگه که انسان محکوم به آزادیه و این بهش مسئولیت سنگینی در قبال کنشهای اجتماعی و سیاسیش محول کنه. دفاع از آزادی بیان و ایستادگی در برابر ظلم و نشون دادن عیب و زشتی ها در جهت اصلاح کردنشون از بنیادی ترین قسمت های از جهت سیاسی سارتر، چپ و طرفتار کمونیزم بود، با این حال هیچ وقت به عضویت حزب کمونیست فرانسه در نیومد و همیشه عملکردش رو مورد انتقاد قرار میداد. در واقع نمایشنامه دست های آلوده حاصل همین انتقاد به کمونیسته. نمایشنامه دوم آوریل 1948 در تئاتر آنتونی در پاریس به کارگردانی پیر والده روی صحنه رفت و به محض منتشر شدن حسابی جنجال به پا کرد. هم راستا و هم چپ ها نمایشنامه رو ضد کمونیستی نامیدن و برای همین در سال 1949 سارت از روی صحنه رفتن نمایش در ویان جلوگیری کرد و همون سال توی کنگره صلح حزب کمونیست در ویان شرکت کرد تا نشون بده با وجود انتقادی که به سیاست های حزب کمونیست فرانسه و انعطاف ناپذیریشون داره هنوز ضد آمریکایی و مارکسیست و نمیخواد ازش برای اهداف ضد کمونیسم استفاده بشه داستان دستهای آلوده عمدتا توی حزب پورتاریا یا همون کمونیست یه کشور فرزی به اسم ایلریا توی سالهای جنگ جهانی دوم میگذره جایی که حکومتش متحد نازی هاست اما ارتش سرخ شوروی پشت دروازهای کشور رسیده و عملا سیاستهای دولت شکست خورده و به نظر میاد حزب پورتاریا که طرفدار شورویه حالا برگ برنده رو دستش داره با همه اینا دستای آلوده بیشتر از اینکه یه درام سیاسی باشه بر پایه اگزیستانسیالیسم سارتر بنا شده و سارت نشون میده که چطور اخلاق و های فردی ما وارد سیاست میشه ما مثل شخصیت های نمایشنامه با حساسات خودمون وارد بازی سیاست میشیم تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. برای همینه که سیاست و زندگی فردی آدم ها هرگز از هم جدا شدنی نیست و برای همینه که ایدئولوژی‌ها به صورت آرمانی نمیتونن به عمل دربیان جلال آل احمد مترجم این نمایشنامه هم که مدت زیادی عضو تشکیلات حزبی بود و در روند مبارزات حزب سرخورده شده بود با شخصیت اول داستان همزاد پنداری می کرد و به خاطر همین سراغ ترجمه این نمایشنامه اومد. این نمایشنامه با همین ترجمه 18 هم تا 25 اسفند 1335 در تئاتر تهران روی صحنه رفت. حالا بریم سراغ نمایشنامه ببینیم سارتر با توجه به این صحبت ها چی نوشته. الگا تنها توی خونه کوچیک و سادش جلوی رادیو نشسته و داره به خبر عقب نشینی نیروهای آلمانی و پیشروی ارتش شوروی به سمت مرزهای ایلریا گوش میده که کسی در میزنه ایلریا اسم یه منطقه است در فرانسه که اینجا ازش به عنوان یک کشور داره یاد میشه وقتی فرد پشت در خودش رو بارین معرفی میکنه الگا خوشگش میزنه ولی زود به خودش میاد و میره از توی گنجه اصلاحش رو بر و در حالی که هوگو داره با بیقراری در میزنه در و باز میکنه. چند لحظه توی سکوت طولانی به هم نگاه میکنن. هوگو به دست الگا اشاره میکنه. شناختی؟ اشتباهی که در کار نیست. حالا برو اینو بذار کنار. الگا که هنوز بدگمانه دعوتش میکنه داخل. اول فکر میکنه هوگو فرار کرده چون قرار بود پنج سال زندان باشه و الان فقط دو سال گذشته. اما هوگو توضیح میده که فرار نکرده بلکه به خاطر رفتار خوب تو زندان آزادش کردن. به اطراف نگاه میکنه و میگه اتاق خیلی خالیه چقدر فضا زیاده. واقعا خنده داره که آدم دوباره آزاد باشه. سرگیجه میاره. فکر کنم باید دوباره عادت کنم وقت حرف زدن مخاطبم ازم دور باشه. وقتی اولگا نگران و محتاطه توجهی به پرحرفیای هوگو نمیکنه و مدام سال پیچش میکنه كی ولت کردن یه راست اومدی اینجا با کسی که حرف نزدی از اون طرف هوگو کاملا باره با بیخیالی جواب سؤالهای الگا رو میده از های سابق میپرسه از وضع حزب اعضای جدید سیاستهای حزب میپرسه در مورد منم حرف زدین؟ الگا خیلی تابلو از این سوال تفره میره. هوگو میگه تنها فرق من با مرده های این بود که هنوز میتونستم فکر کنم شما به هم فکر میکنید. حتما میگفتیم خوب از خطرجه است و کسی هم لو نداد. حالا دو سال دیگه آزاد میشه. اون وقت مثل سگ میکشیمش. الگا از جا میپره. دیوونه شدی؟ هوگو هنوز بیعتناست. میگه که شش ماه بستای شکلات از طرف نمیشناخته یه اسمی که نمی فکر میکرده که از طرف رفقای حزبیشه و خوشحال میشده. اما بعد یک دفعه دیگه بسته ای نایومد. با خودش فکر میکرده که نه امکان نداره فراموشم کنند. بعد از چند هفته خبری یه بسته جدید میگیره. سیگار و شکلات. سیگارها رو خودش کشیده و شکلاتها رو همبندیش خورده. بیچاره همبندیش خیلی حالش بد شده. خیلی بد. مکس میکنه تا اولگا رو ببینه. بعد ادامه میده ماهها بهش فکر کردم و فقط یه توضیح براش داشتم اول حسب فکر می‌کرد که من قابل استفادهم، اما بعد نظرش عوض شد اولگا که حسابی عصبانیه با داد و فریاد میگه که هوگو عقلشو از دست داده و اگه اینطوری فکر میکنه که اصلا چرا اومده اونجا هوگو لبخند میزنه و به اسلحه توی دست اولگا اشاره میکنه چونت نمیتونی منو با اون بکشی حداقل من فکر میکنم نمیتونی و به بالاخره اسلحه رو پایین میذاره و در حالی که دوباره توی قالب یخیش فرو میره تاکید میکنه که در مورد هوگو هیچ دستوری نگرفته اما هر دستوری بگیره اطاعت میکنه مطلقاً هر دستوری و از هوگو میخواد که اونجا رو ترک کنه هوگو با تمسخر اداش رو در میاره هر دستوری بگیرم اطاعت میکنم دستور من ساده بود نه برو به خونه هودرر و سه تا گلوله خالی کن توی شکمش منم رفتم خونش و سه تا گلوله خالی کردم توی شکمش ولی بعد چی؟ بعد دیگه دستوری در کار نیست. خودم تنهایی آدم کشتم. هم چرا. دلم میخواد حز بهت دستور بده به من شلی کنی. فقط برای اینکه ببینم چیکار میکنی. صدای ترمز ماشین باز میشه هر دو ساکت بشن. بعد صدای در میاد و فرد پشت در خودش رو شارل معرفی میکنه. اولگا با نگرانی هوگو رو توی اتاق خودش قایم میکنه و بعد در رو باز میکنه. شارل و یه نفر دیگه وارد اتاق میشن. شارل به محض ورود رو میگیره. کجاست؟ وقتی از زندان آزاد شد تعقیبش کردیم اینجا نیست. اولگا میگه که هوگو اونجاست، اما راه شارلو به سمت اتاق سد میکنه. شارل به همراهش اشاره میکنه و به اولگا میگه اگه دلش نمیخواد ببینه بهتره بره بیرون قدم بزنه چون اون پسر دیگه که همراهشه اینجا رو تمیز میکنه. اما اولگا با قاطعیت سر جاش ایستاده. میپرسه لویی فرستادادت دیگه، خودش کجاست؟ برو بیارش. شارل اول تردید میکنه اما بالاخره با دیدن چهره مسمم اولگا به دوستش اشاره میکنه تا لویی رو که توی ماشین منتظره بیاره. چند لحظه بعد لویی با عصبانیت وارد میشه و به اولگا میتوپه. چرا نمیذاری کارشون بکنن؟ اولگا لویی رو دعوت بارامش میکنه و اول ازش میخواد تا شارل و همراهش رو بیرون بفرسته تا بتونن با هم صحبت بکنن. خودش آرومه و میگه خیلی عجله دارید. هرچی نباشه اون برای ما کار کرده. lui اعتقاد داره که هوگو وراج و خطرناکه و ممکنه هر چیزی رو بروز بده میگه هوگو آنارشیسته هر جو مرش طلبو بورژواست اما اولگا معتقد با این وضعیت حزب و با از دست رفتن تعداد زیادی از اعضا نباید ریسک کنن و هوگو رو بدون امتحان کردن بکشن بعد هم اضافه میکنه که در زم همین جوون وقتی 20 سالش بود کودرل رو جلوی چشم نگهبانهای خونش کشت و بعد همین این جنایت سیاسی رو قتل عاشقانه جا زد لوی واقعا شک داره که قضیه واقعا جنایت سیاسی بود یا قتل عاشقانه. اولگا هم درست نمیدونه اما قصد داره داستان رو روشن کنه. میگه هوگو ثابت کرده به درد بخوره و الان که ناامید و از همه جا رونده است، اگه نگاhesh دارن میشه واسه هر کاری ازش استفاده کرد. البته لوی کلا نظر خوبی به ماجرا نداره و اعتقاد داره که اولگا داره احساسی برخورد میکنه و کلا همیشه در برابر هوگو ضعف داشته. اما اولگا بهش اطمینان میده که تهو قضیه رو در میاره و بدون دخالت احساسات تصمیم میگیره که صلاح هوگو رو نگه دارن یا نه در آخر قراری میشه که تا نیمه شب لوی و بقیه بیرون کشیک بدن و اولگا هم تا اون موقع بفهمه هوگو واقعا چرا رو کشته و تصمیم نهایی رو بگیره اما اگر قرار به زنده موندن هوگو شد اونها رو از پشت در میگردونه و اگر قرار به مرگش باشه درو در باز میکنه بلاخره لویی در حالی که هنوز قُر می‌زنه که دارن الکی به خودشون زحمت میدن با اکراه میگه پاستانی میشه و میره و الگا هم میره به سمت اتاقش تا این مأموریت سخت رو انجام بده. هوگو که از اتاق بیرون میاد الگا بهش میگه که اومده بودن و سراغش رو میگرفتن. هوگو میخواد بره اما الگا این رو هم بهش میگه که اونا بیرونن و دارن کشیک میدن. بعد هم براش غذا میاره و بهش اطمینان میده که تا وقتی اینجاست کسی بهش آسیب نمیزنه. میگه تو یک شب فرصت داری توی یه شب خیلی چیزا ممکن اتفاق بیفته. چرا بر نمیگردی با ما باشی؟ هوگو میزنه زیر خنده اما اولگا کاملا جدیه. به هوگو میگه اگه ممکن باشه چی؟ اگه همه چیه سوء تفاهم بوده باشه چی؟ وقتی از زندان آزاد شدی فکر نکردی الان میخوای چیکار کنی؟ هوگو میگه که بیشتر به کاری که کرده فکر میکرده. میخواسته سر در بیاره چرا اون کارو کرده. اولگا که درست منتظر همین لحظه بود، زود سر نخ رو میگیره. و میگه فهمیدی چرا اوزا با هودرر چطور پیش رفت راست که دور بر جسیکا میپلکید هوگو حرف اولگا رو تایید میکنه اولگا میپرسه پس به خاطر حسادت بود که هوگو خودش هم مردده میگه نمیدونم گمون نکنم اولگا ازش میخواد که همه چیز رو تعریف کنه از اول اول و هوگو اینطور میگه تعریف کردنش کار سختی نیست داستانش رو من حفظم هر روز توی زندان برای خودم مرورش میکردم اما اینکه چه معنایی داری موضوع جداست؟ اولش رو تو خودتم خوب میدونی بیا بگیم همه چیز از مارس شروع شد؟ پرده اول تموم میشه و فلش بک میخوره به دو سال قبل. توی همین خونه و توی همین اتاق اولگا. از اتاق کناری مدام سر و صدا بلند میشه و میخوابه. انگار که چند نفر دارن به شدت با هم بحث میکنن. توی اتاق هوگو که خیلی جمونتر از پرده قبله پشت ماشین تحریر نشسته. مرد جوان دیگه توی اتاق قدم میزنه. با صدای عصبی از هوگو میخواد که دست از تایپ کردن برداره و باهاش حرف بزنه. هم با خوشرویی شروع میکنه به حرف زدن. اول اسم مرد رو میپرسه. مرد جوون میگه که اسمش ایوانه و اونم اسم هوگو رو میپرسه، هگو میگه که اسمش راسکولنیکوفه. اگه جنایت و مکافات داسایفسکی رو خونده باشید یا در مورد شنیده باشید میشناسیدش. ایوان به خنده میفته اما هوگو توضیح میده که این اسم هزویشه و در واقع اسم شخصیتی یه کتابه که آدم میکشه بعد بحث رو عوض میکنه. میگه کیطور فرستاده اینجا؟ معلوم میشه ایوان رو لویی فرستاده و الان هم منتظره تا ساعت ده بشه اما وقتی هوگو میپرسه که خب اون وقت میخواد چی کار کنه یه قیافه میگیره که یعنی نباید در مورد این چیزا سوال کنی سر و صدا توی اتاق بغلی حسابی بالا گرفته ایوان میپرسه دارن اون تو چه غلطی میکنن و هوگو متقابلا قیافه ای می میگیره که یعنی نباید در این مورد سوال کنی ایوان هم بحثو عوض میکنه میگه خب پس تو روزنامه درست میکنی آره هوگو میگه تنها نیست توی این کار ایوان بیتنا میگه که گای روزامه به دست اونم میرسه اما نمیخونتش آخه اخبارش یه هفت از رادیو عقبه هگو میگه فکر کردیم اخبار از کجا میگیریم ما هم از رادیو میشنویم دیگه ایوان از هوگو ساعت رو میپرسه ساعت پنج دقیقه به دهه. ایوان کلاف است و به نظر میاد حالش خوب نیست اما خودش میگه که خوبه و همیشه قبل از اما حرفش رو میخوره. سوال میکنه قبل از چی ایوان جواب نمیده همون موقع در باز میشه و اولگا با یه چمدون بزرگ میاد تو از ایوان میپرسه میتونه چمدونو بذاره ترک دو چرخش یا نه که ایوان میگه میتونه اولگا به ایوان میگه پس میتونه رابی افتی ساعت ده. گونه های ایوان رو میبوسه و راهیش میکنه بعد رفتن ایوان هوگو رو میکنه به اولگا رفت چیکار کنه؟ ولی مشخصه که اولگا سلاح نمیدونه به هوگو بگه هگو نه؟ الگا با آرامش میگه که اگه میدونه خب چرا میخواد الگا بهش بگه بعد هم میگه کلا هرچی کمتر بدونه براش بهتره هوگو میپرسه ولی تو میدونی که میخواد چیکار کنه مگه نه الگا شونهاشو میندازه بالا هوگو با دلخوری میگه معلومه تو زبونت قرصه مثل لویی با کشانتون هم حرف نمیزنی فقط نمیدونم کی بهتون گفته من دهنم لقه اگه امتحان نکنیم چطور میخوایم بهم اعتماد کنین الگا میگه حزب دنبال کردن آدما نیست دومانی اینه که در حد لیاقتشون بهشون وظیفه بده. اوگو یکم بهش بر میخوره. با اکراه به ماشین تحریر اشاره میکنه. میگه لیاقت منم فقط در همین حد داره. توی آینه نگاه میکنه و به اولگا میگه میخواسته ببینه شبیه پدرش شده یا نه. میگه با پدرش مشکل داشته. پدرش بهش گفته که اونم قبلا توی جمعیت انقلابی بوده و بعدن از سرش افتاده. از سر هوگو هم میافت. اولگا به اتاق بغلی اشاره میکنه. لوی اونجاست. هوگو هم تایید میکنه. اولگا میپرسه هودرر چی؟ هوگو میگه هودرر رو نمیشناسه ولی فکر میکنه اونم باید اونجا باشه. بعد هم میپرسه اصلا این کی هست؟ اولگا توضیح میده که هودرر قبلا نماینده لاندشتاگ بوده و الان دبیر حزبه. امشب هم کمیتر رو دعوت کرده که در مورد پیشنهادش رای بگیرن. دقیقا هم نمیدونه پیشنهادش چیه. فقط میدونه هرچی هست لویی باید به شدت باهاش مخالف باشه. هوگو با خنده میگه که اگه مخالفه اونم هست. اصلا دیگه نیازی نیست بدونه پیشنهاد چی بوده. بعد هم از اولگا کمک میخواد برای اینکه لویی رو قانع کنه بهش فعالیت مهم درست حسابی بده. از نوشتن خسته شده. اونم تو وضعیتی که بقیه دارن خودشون رو به کشتن میدن. و انگیزه دیگه برای زندگی نداره. اولگا میگه ولی تو زن داری. زنت هم دوست داری. هوگو میگه زنش رو دوست داره ولی بازم دلش میخواد به درد بخوره. از توی اتاق کناری صدای داد و فریاد میاد و به نظر میاد اوضا حسابی خرابه که در باز میشه و لویی با عصبانیت میاد توی اتاق بی شرفا. اولگا با نگرانی جویای وضعیت میشه. لویی میگه رأی گرفتن از حال روزش به نظر نمیاد اوضا مساعد باشه. میگه که جلسه بعدی ده روز دیگه است و هنوز وقت دارند. اولگا با چشم ابرو به هوگو اشاره میکنه. لویی انگار تازه چشمش به هوگو میفته. میگه ا تو هنوز اینجایی؟ ای؟ هگو بلند میشه که بره اما لوی ازش میخواد که بمونه. بعد رو میکنه به الگا میگه تو بهتر از من اینو میشناسی. چه کاری ازش برمیاد؟ اولگا میگه که بدک نیست و میشه بهش اعتماد کرد. جا نمیزنه. لویی میپرسه که ایوان رفته یا نه؟ میگه ما اولین خونه ایم. صدای انفجار از اینجا شنیده میشه. رو میکنه به هوگو میگه میخی فعالیت کنی؟ هوگو میگه که میخواد. لویی میپرسه چه کاری ازش برمیاد؟ هگو میگه نمیدونم. تو قرن پیش توی روسیه یه سری آدم رو و میرفتن سر راه آدمای کله گونده بمب میترکیده و هم خودشون میمردن هم طرف میگه میتونه اون کارو بکنه روی با خنده میگه اونا آنارشیست بودن هوگو همسه اونا روشنفکر آنارشیسته فقط حیف که 50 سال دیر به دنیا آمده چون دوره ترور فردی دیگه تموم شده هوگو ناامید میشه و میخواد بره اما لویی میگه شاید بتونه یه کاری براش جور کنه هوگو با خوشحالی میگه هر چی باشه قبول میکنه لویی ازش میخواد بشینه و براش توضیح میده که وضعیت مملکت الان اینطوریه یه طرف دولت فاشیست ولی عهد که سیاست‌هاش مثل موزولینیه یه طرف هم حزب پرولتاریایی یعنی همین حزب خودشون که برای آزادی و دموکراسی و جامعه‌ای بدون اختلاف طبقاتی داره می‌جنگه این وسط و بین این دو تا قطب هم حزب پانتاگونه که ها و ملیگراها تشکیلش دادن سه گروه آدم با منافع و عرضش های کاملا متفاوت اما هودرر امشب اعضای حزب رو دعوت کرده بود تا حزب رو با فاشیست‌ها و پانتاگون ها متحد کنه تا بعد از جنگ کشور رو با هم اداره کنه هوگو خندش میگیره میگه داری دستم میندازی دیگه. لویی میگه چرا؟ هوگو میگه خب چون مسخره است. مثل این میمونه که بگی اولگا رفته همه چی رو گذاشته کف دست پلیس و تازه حزبم ازاش تقدیر کرده. لویی آه میکشه میگه اگه بهت بگم اکثریت هم به این پیشنهاد رأی دادن چیکار میکنی؟ هوگو اول جدی نمیگیره اما لویی دوباره سوالش رو تکرار میکنه. هوگو میگه من خونه و زندگی و طبقه اجتماعی رو ترک کردم فهمیدم فشار یعنی چی و دیگه هم دلم نمیخواد توی اون طبقه برگردم. لویی توضیح میده که کمیته پیشنهاد هودرر رو پذیرفته و هفته دیگه هودرر قرار نماینده ولیاحت رو ببینه. چون ولیاحت با وجود اینکه از حزب متنفره و ترجیح میده همه اعضا رو تیربارون کنه، دیگه از برد ها مطمئن نیست و میخواد جون خودشو نجات بده. از طرفی خود حزب از اتحاد کمونیست ها که لوی نماینده شونه و سوشیال دموکرات ها که هودرر نماینده شونه تشکیل شده و سوشیال دموکرات ها که جمعیت بیشتری دارن به نفع هودرر رای دادن چون ازش میترسن توی این وضعیت هم کمونیست ها نمیتونن انشاب کنن و از حزب جدا بشن و حکومت میپرسه که کدوم طرفیه حکومت میگه قطعا طرفی که لوی و اولگا باشن چون همه چی رو از اونا یاد گرفته لوی دوباره موقعیت پیچیده شون رو توضیح میده نمیتونن جدا بشن نمیتونن رای اکثریت رو داشته باشن همه چی الان بستگی به شخص هودرر داره اگه هودرری در کار نباشه براحتی از پس بقیه برمیان یه لحظه مکس میکنه و بعد میگه هودرر از حسب خواسته که یه منشی براش بفرسته که دانشجو باشه و زنم داشته باشه تو زن داری؟ هوگو میگه که داره لوی می پس با موافقت. با لوی این نقشه رو توضیح میده. فردا با زنت راه میافتی. توی خونه ی ییلاقی 20 کیلومتری اینجا زندگی میکنه. با سه تا گردن کولفت که محافظاشن. باید حواست بهش باشه. ما باهات در ارتباطیم. فقط هودره نباید نماینده ی رو ببینه. حداقل نباید برای بار دوم ببینتش. یه شب بهت میگیم که درو در باز کنی. چند نفر رو میفرستیم تا کارو تموم کنن و یه ماشین هم میفرستیم تا تو زنت رو نجات بدن. متوجه شدی؟ هوگو حسابی خورده توی ذوقش. انتظار کار بزرگتر و مهمتری رو داشته. با ناراحتی میگه که دلش نمیخواد نقش تومه رو بازی کنه و در عوض یه پیشنهاد جدید میده. میگه لازم نیست کسی رو بفرستید. اصلا لازم نیست با من هماهنگ کنید. خودم میرم و کارو تموم میکنم. لوی اول مخالفت میکنه. میگه که واسه یه تازه کار خیلی سخته. اما هوگو اینطوری متقاعدش میکنه که این کار دردسرش زیاده و تازه ممکنه کسایی که لویی میفرسته توی درگیری با محافظای کشته بشن. اما هگو منشیشه و انتمادش رو تا اون موقع جلب کرده لویی هنوز مردده اما اینجا اولگا پشت هوگو در میاد و از لویی میخواد که بهش اعتماد کنه حتی مسئولیت عواقب کار رو هم میپذیره لویی هم روی حساب حرف اولگا قبول میکنه میگه پس گوش کن صدای انفجار شدیدی از دور باعث میشه حرف لویی قطع بشه ستایی میلر لب پنجره و شعله های آتیش رو از دور میبینن که زبونه میکشه اولگا که شده با میگه موفق شد موفق شد هگاه هم که تحت تاثیر قرار گرفته میگه موفق شد یه هفته دیگه هم شما دوتا اینجا دارین در مورد من حرف میزنین و نگران این چی شده که تلفن زنگ میزنه و شما هم مثل الان به هم میگین موفق شد, موفق شد. فردای اون روزه توی خونه ی یعلاقی توی اتاق که همه جا لباس ریخته و چمدون بازه جسیکا همسر هوگو مشغول مرتب کردن وسایل. از جیب لباس هوگو که توی کمود آویزونه کلید یه چمدون باز نشده رو پیدا میکنه و اونو باز میکنه یکم چمدون رو زیر و رو میکنه اما با صدای پا از جامی پره و چیزی رو که از چمدون پیدا کرده بود زیر توشک قایم میکنه که هوگو میشه. جسیکا میپرسه خب چطور بود؟ هوگو میگه هودرر مثل همه مردم. اما جسیکا دست از سرش بر نمی داره و سوال پیچش میکنه. هوگو هودرر رو اینطوری توصیف میکنه. عاقل یه زخم بزرگ رو صورتش داره. قد متوسط، کلاه گیس و چشم مصنوعی هم داره. جسیکا آه میکشه اما هوگو به خنده میفته و میگه داشته سر به سر جسیکا میذاشته. جسیکا میگه درسته. اما واقعا هم نمیتونه هودرر رو توصیف کنه. هوگو میگه میتونم. کراوات خالدار بسته بود. جسیکا میگه حتما هوگو خیلی خودشو باخته چون همش به کراوات هودرر زل زده بود نه به قیافش. پت هم میگه من وقتی ببینمش درست حسابی نگاش میکنم اون وقت بهت میگم که چه شکلیه. خب حالا چی میگفت؟ هوگو میگه به هودرر گفته پدرش رئیس شرکت زغال سنگ. ما هوگو باهاش اختلاف داشته واسه همینم از خونه بیرون زده و اومده توی حسب. هودرر هم گفته کار خوبی کردی. بعد هم گفته با اینکه مدرک دانشگاهی داره مثل روشن فکران نیست و مشکلی نداره که انزبات خشک و نظامی رو رعایت کنه. جسیکا میگه تو فقط میگی چی گفتی، نمیگی بقیه چی بهت گفتن. هوگو هم میگه این به خاطر اینه که فکر میکنه حرفای اون واسه جسیکا مهمه نه حرفای بقیه. میپرسه میخوای دل هودرر رو ببری؟ جسیکا میگه میخواد دل همه رو ببره. بعد هم سوال میکنه که هودرر در موردش از هوگو پرسید؟ هوگو میگه نپرسید جسیکا میگه حتی اگرم میپرسی تو چیزی نمیتونستی بهش بگی اصلا در مورد من چیزی نمیدونی در مورد من هیچی نگفت هوگو میگه نگفته بعد هم میگه که دیگه دیره جسیکا بهش علاقه من بشه چون هودرر قراره به زودی کشته بشه مثل همه مردای سیاست جسیکا اول شکه میشه بعد انگار چیزی یادش اومده باشه میپرسه عزیز دلم تو هم مرد سیاستی هوگو با افتخار میگه البته که هست برای جسیکا انگار هیچ جدی نیست میگه میدونی اگه تو کشته بشی چیکار میکنم یکی یکی قاتلات رو پیدا میکنم و با عشق خودم آتیششون میزنم بعد هم توی لحظه اوج وقتی فکر کنن آتیش قلبم رو تسکین دادن یه خنجر فرو میکنم توی قلبشون بعد هم بلند میشه تا بقیه چمدون ها رو باز کنه و هوگو میخواد که کلید چمدون رو بهش بده هوگو میگه قبلا داده اما جسیکا اشاره میکنه به چمدونی که قبل از اومدن هوگو بازش کرده بود میگه مال اینو ندادی هوگو هم تفره میره که اونو بعدا خودم باز میکنم این میشه شروع یه بازی بچه گونه که جسیکا باهاش از هوگو حرف بکشه. از جسیکا اصرار واسه باس کردن چمدون و از هوگو انکار. بالاخره جسیکا میپرسه تو چمدون چیه؟ هوگو هم مسخره بازیش گل کرده و میگه یه راز خجالت آور. اینکه من بچه‌ی بابام نیستم. جسیکا میگه این چرده چون هوگو خیلی شبیه باباشه بعد دوباره برمیگردن سر بازی خودشون. جسیکا به هوگو میگه لابد توش پاراز نامه‌های اون زنیکه گور گلگاست. گل یا پر از عکساش باز کن هوگو باز نمیکنه جسیکا دیگه خسته شده میگه دیگه بازی در نمیاره و میخواد هوگو واقعا چمدون رو باز کنه اما هوگو باز هم ادامه میده شونه میندازه بالا که خب اصلا مهم نیست خودم میدونم توش چیه؟ دستش رو میکنه زیر توشک تخت و عکس رو در میاره و تکون تکون میده هوگو شکه شده جسیکا هم که بازی رو برده با لحن ای میگه ملکات من نیستم اون زنیکه گرگ الگا هم نیست خودتی دوازده تا عکس فقط از خودت از خونه پدریت که اومدی همه رو با خودت آوردی آخه تو چقدر میتونی خودتو دوست داشته باشی هوگو بهش برخورده میگه دیگه بازی در نمیاره، اما جسیکا ادامه میده همین پسرای آروم خانواده ها که وحشتناکترین ناکترین انقلابی و در میان حرف نمیزنن زیر میز قایم نمیشن یه دون آپنوات بیشتر نمیخورن، ولی بعدا برای جامعه خیلی گرون تموم میشن هوگو که تا الان سبر کرده بود یه دفعه می پر روی جیسیکا و میگه عکس رو بهم به میدی یا نه جسیکا جیغ میزنه. الان هردومون رو به کشتن میدی هگو توجهی نمیکنه و تلاش میکنه کنه ها رو بگیره تا اینکه جسییکا میگه الان تفنگ در می ره که هوگو از روش کنار میره و جسیکا نفس نفسزنان اصل هر رو که تا حالا پشتش قایم کرده بود در میاره و میگه اون رو هم کنار عکس توی چمد پیدا کرده هگو توفنگ رو ازش میگیره و عکس رو جمع میکنه جسیکا میپرسه تفنگ برای چیه؟ هوگو اول الکی میگه که همیشه همراهش داره اما جسیکا میدونه که دروغه. اینو هم بهش میگه. هوگو اول ازش قول میگیره که حرفی به کسی نزنه. بعد میگه که قرار هودرره رو بکشه. جسیکا یه خورده گیج شده اما زود برمیگرده به همون حالت جدی نگرفتن همیشه گیش و میگه هوگو نمیتونه آدم بکشه. اگه قرار به همچین چیزی هم هست بهتر کارو به جسیکا بسپره. اونم اول بره خودش رو تسلیم و تقدیم هودرر بکنه و بعد بکشدش. اما یه سوال اصلا چرا میخواد تودرر رو بکشه هوگو میگه برای اینکه زنم منو جدی بگیره راستی تو منو جدی میگیری جسیکا مسخره بازی در میاره هوگو میپرسه جسیکا در مورد کشتن هودرر حرفم باور نداری جسیکا میگه منطقیه که باور کنه هوگو کلافه شده از جسیکا میخواد جدی باشه اما جیسیکا میگه دوست نداره جدی باشه ولی میتونه ادای جدی بودن رو در بیاره هوگو باز تکرار میکنه که راستش رو گفته و واقعا حز واسه این کار فرستادتش. جسیکا میگه خب اول بیهوشش کنیم بعد ببندیمش بی دمه توپ. هوگو عصبی میگه جدی داره حرف میزنه که در میزنن. هوگو بلند میشه و درو باز میکنه. اسلیک و جورج محافظای هودره با مسلسل و بند و بسات میان تو. خودشون میگن اومدن واسه اسباب کشی کمک کنن اما در واقع اومدن تا مثلا نامحسوس اتاق رو بگردن. اسلیک یه لباس زیر زنونه رو برمی و تاش میکنه. میگه این رو اینطوری تا میکنن اما جورج که یکم خجالتی به نظر میاد اسلیک رو دعوا میکنه و از جسیکا عذر میخواد میگه شش ماهی میشده که زن ندیده بودن و این شروع خوشو بشه به ظاهر دوستانشون میشه اسلیک و جورج میگن که منشی قبلی که مجرد بوده شبا فرار میکرده به دهکده و یه شب که داشته پرمیگشته افتاده توی چاه و مرده واسه همینم هودرر این دفعه درخواست منشی زندار کرده اما دیگه فکری با این دوتا نکرد یعنی جورج و اسلیک چون می‌خاسته اونا درنده بشن. جسیکا بهشون میگه شکاری نداره مسلسل و بقیه چیزها رو در بیارن. اما اونا میگن که ممنوعه. هوگا هم که تا ساکت بوده با تنه میگه انگار خیلی نسبت به قوانین سخت گیرن چون وقتی رفته دیدن هودرر این دو تا لوله تفنگشون رو گذاشتن پشتش. جسیکا میگه حتما اربابتون خیلی میترسه بکشنش. اسلیک و جورش هم تایید میکنن و میگن این روزا قصد زیادی شده و تازه دو هفته پیش هم خبر رسید قرار رو که شدن. همینطور که دارن حرف میزنن جورج اتاق می می در اتاق میگرده بعد میره از تو کموت لباس هگر رو در میاره و نشون اسلیک میده که ببین چقدر خوب دوخته شده بعد هم تظاهر میکنه که داره کت رو میتکنه اما در واقع داره میگردتش بعد برش میگردونه توی کموت از اون طرف اسلیک میگه دیدی چقدر تختشون بزرگه سه چهار نفر توش جا میشن جورج هم قر میزنه که اون وقت ما باید روی زمین بخوابیم و برای جسیکا که کنجکاپ شده توضیح میدن که یکیشون توی راهرو میخوابه و اون یکی روی زمین دفتر هودرر. جسیکا میپرسه خیلی سفته. جورج میگه واسه شوهر شما خیلی سفته چون خیلی نازک نارنجیه. اما ما واسه همین کارا ساخته شدیم. بعد هم خم میشه و زیر تخت رو نگاه میکنه و رو به هوگو که از این حرکت خوشش نیومده میگه گفتم شاید موش داشته باشه. جسیکا میگه که اونها و هوگو به زودی با هم رفیق میشن و بعدش ادامه میده شوهرم آدمکشا رو خیلی دوست داره از بچگی دلش میخواست این کاره بشه اسلیکوگو از بالا تا پایین ورانداز میکنه و میگه بهش نمیاد هوگو که کلافه و عصبی شده میره رو باز میکنه و عملا داره بیرونشون میکنه که اسلیک به طرف در میره و در درو میبنده و بالاخره بعد از اون همه موش و گربه بازی میگه که میخوان اتاق رو بگردن و خوپوگو هم با قاطعیت مخالفت میکنه البته بیشتر به نظر میاد به خاطر غرور باشه تا اثر ترس جورج از هوگو میخواد مخالفت رو بذاره کنار و اگرچه اصلا فکر نمیکنه هوگات بتونی بتونه گنجش رو بزنه ولی بازم باید محض احتیاط بگردنش اما هوگو پاشو کرده یک کفش که نمیشه اسلیک و جورج میگن بابا تو چطور حزبی هستی که نمیدونی دستور حزبی چه معنی داره هوگو میگه به دستورها و وظایف احترام میذاره اما به خودش هم احترام میذاره و اعتقاد داره این دستور فقط برای بی‌احترامی به اون صادر شده جورج و اسلیک این حرفش رو مسخره میکنن و میگن این حرفها مال از اونا بهترونه و آدم تا منشی چیزی نباشه نمیتونه خش احترام قائل بشه اما حقوق میگه از اول واسه این واردهیف شده که همه مردم بتونن برای خودشون احترام قائل باشن جورج میگه ساکتش کن اسلیک ما اگه اومدیم تو حز واسه این بوده که از گرسنگگی کشیدن خسته شده بودیم واسه اینکه آدمایی مثل ما چیزی واسه خوردن داشته باشن بعد هم رو میکنه به اسلیک و میخوان کار رو شروع کنن که هوگو باز مخالفت میکنه و میگه حتی اگه خود هودرر هم دست دور بده که وسایلش رو بگردن از اینجا میره. بلاخره جسیکا که تال ساکت بود مداخله میکنه و پیشنهاد میده به خود هودرر زنگ بزنن که از نظر بقیه پیشنهاد خوبیه. جورج زنگ میزنه به هودرر و قرار میشه اون خودش بیاد با این. اسلیک هم به جورج میگه که اگه هودرر بخواد هوگو رو کنه اونه که اینجا نمیمونه و جورج هم موافقه. بلاخره هودرر میرسه و میپرسه مشکل چیه اونها هم توضیح میدن قبل از هر چیز هودرر رو میکنه به جسیکا و اسمش رو میپرسه بعد هم خیلی روک و راست از اینکه جسیکا خوشگله اساره تاسف میکنه بعد میشینه روی صندلی و رو میکنه به اسلیک و میگه چه زخم زبونایی بهش زدین که خوب لباس پوشیده که لفظ قلم حرف میزنه محافظا معذب شدن هودرر به هر سه نگاه میکنه و میگه اونا از اول بد شروع کردن او از بالا به جورج اسلیک نگاه کرده و اون دوتا هم کلا باش از زنده چپ بلند شدند و ازشون میخواد اختلاف رو کنار بذارن و با هم کنار بیان. جورج با تمسخور میگه احساسات سفارشی نیستن. اما هودرر با حرارت و قاطعیت میگه چرا؟ سفارشی هند. مخصوصا برای اعضای یک حزب کاملا سفارشی هند. اسلیک میگه اونا شاید اعضای یه حزب باشن اما با وارد انگیزه های به هوگو اشاره میکنه و میگه اون میخواد احترام به خود رو یاد فقیرها و بیچاره ها بده و هوگو هم مثل بچه ها در دفاع از خودش میگه که جورج و اسلیک هم واسه سیر کردن شکمشون وارد حزب شدن در کمال تعجب دو طرف هودرر خیلی راحت میگه که خب پس با هم موافقید رو میکنه به اسلیک و ازش میپرسه مگه گرسنگی عصبانی و ناراحتش نمیکرده مگه نمیگفتی یه پسر 20 ساله بجای اینکه فقط فکر سیر کردن شکمش باشه باید بتونه کارای بهتر و مفیدتری بکنه خب پس حالا اونم اعتقاد داره که آدم علاوه بر قضا به چیزهای دیگه‌ای هم احتیاج داره. حالا هوگو اسمشو گذاشته احترام به خود. اما اسلیک میگه که هوگو تا حالا گرسنگی نکشیده. اون وقت میخواد به بقیه اخلاق و آداب یاد بده. هوگو میگه که حق با اوناست. هیچ وقت گرسنگی نکشیده. هیچ وقت اشتها نداشته و در حالی که بقیه داشتن به خاطر یتی که گوش خودشونو می‌فروختن، همه به زور قضا می‌ریختن تو حلقه هوگو و وقتی هم که وارد حزب شده، با وجود همه حسن نیتش همیشه به خاطر خانواده بورژووا و سبک زندگیش توی حزب از بالا بهش نگاه شده و مسخرش کردند. کل این حرفا جورج و اسلیک رو تحت تحقیر قرار داده و فضا رو سنگین کرده. هودرر هم که کلان ذاتن آدم تحصیل گذاریه آتیش این حرفا رو تندتر میکنه و از اسلیک و جورج می‌پرسه که هوگو چیکار باید بکنه که اونا ببخشنش؟ دستش رو قط کنه؟ زنش رو در اختیار اونا بذاره؟ در نهایت با همه ی حرف ها و حدیث ها دو طرف با بی میلی توافق میکنن که با هم کنار بیان حالا تازه کار رسیده به مسئله دوم گشتن وسایل جورج و اسلیک تا حدی خودشونو تو این قسمت برنده می دیدن اما هودر ساکتشون میکنه و به هوگو میگه که اگه برای اون استثناء قائل بشه کم کم برای بقیه هم میشه و ممکنه این وسط یکی واقعا مأموریتی چیزی داشته باشه و اینطوری از دستشون در بره و ازش میپرسه که اگه خواهش کنه اجازه میده که وسایلو بگردن یا نه هوگو به نرمی میگه که هنوز هم قانع نمیشه. هودرر نفس عمیقی میکشه، رو میکنه به هوگو و خیلی ساده میپرسه که اسلحه داره یا نه. و هوگو میگه نه. میپرسه جسیکا چطور؟ و هوگو دوباره میگه نه. به همین راحتی. هودرر به این حرفا اعتماد میکنه و میگه همین کافیه و دوست داره به مردم اعتماد کنه. این جزء اصولش. قائل دیگه داره ختم به خیر میشه که یک ازشون میخواد اتاق رو بگردن. با این استدلال که در برابر اعتماد باید اعتماد نشون داد و اینطوری هم که خودشون خواستن دیگه به هوگو بی احترامی نمیشه. جورج اسلیک اول تردید دارن اما با دستور هودرر شروع می‌کنن به گشتن اتاق و هوگو حیرون و وحشت زده است که خب الان اسلحه رو پیدا میکنن اما جسیکا کاملا بی جورج اسلیک سانت به سانت اتاق رو می گردن. حتی با خجالت و نوک انگشت جسیکا رو هم می‌گردن. اما چیزی پیدا نمی‌کنن و یکم ناامید از این که بازی رو به حگو باختن اتاق رو ترک می‌کنن. این طرف هودرر خوشحال و راضی از اینکه درست اعتماد کرده و جیسیکا خوشحال از اینکه اعتماد هودرر رو نشسته شروع می‌کنن با هم حرف زدن. هودرر یکم با حالتی وقیحانه و زننده توصیه کنه که جیسیکا که تنها زن خونه است بهتر تو خودشون بمونه و مراقب خودش باش. یا وقتی پیش جورج و سلیک میره به خودش عطر نزنه. وسایل اتاق نگاه میکنه و از روی همونها ها درستی در مورد هوگو میزنه. از روی کتاب ها میفهمه که هوگو اهل مطالعه و فلسفه است. در مورد کار قبلیش توی روزنامه ازش سوال میکنه و احتمالا تنها کسیه که برای اون کار ارزش واقعی قائل میشه. و هوگو میپرسه که چرا اون کار مهم رو ول کرده و اومده تا زیر دست بشه. هوگو با حالتی نیمه صادقانه میگه که لازم سرش شو شلوغ کنه وزیه بالا بالادست اطاعت کنه تا فکر و خیال های زیادی که توی سرش رو سر و سامون بده. هودرر نگاه به اون چمدون خاص میکنه و میپرسه چرا وقتی اونو میگشتن هگو ترسیده بود هوگو انکار میکنه اما هودرر به سمت چمدون میره و خودشون رو میگرده و عکس ها رو پیدا میکنه هوگو میخواد عکس ها رو بگیره اما هودرر با درک خاص و بدون تممسخر میگه پس چیزی که هوگو میترسیده پیدا بشه این بوده غلبخند میگه هوگو انقدر تشدیده بود که فکر میکند حداقل دقل یه نارنجکی چیزی توی چمدون باید باش. یکی یکی اکثار رو نگاه میکنه و میگه هوگو قبلا شاد نبوده و منطقیه دلش میخواد گذشتهش رو فراموش کنه. اما حالا که اینطوره چرا دیگه این اکثار رو دنبال خودش میکشه؟ بعد هم همون ای رو میگیره که جسیکا گرفته بود و میگه تو خیلی به خودت مشغولی پسرچون بعد هم بدون قضاوت اضافه ای ها رو برمیگردونه به هوگو قرار فردا صبحشون رو هم یادآوری میکنه و با یه شب بخیر به جسیکا اتاق رو ترک میکنه. همین که هوگو و جسیکا تنها میشن جسیکا میزنه زیر خنده و انگار حسابی براش سرگرم کننده بوده میگه هوگو گیر مردای واقعی افتاده بود. توفنگ رو از یقش میکشه بیرون و ادای هودره رو در میاره. اعتماد آدم باید به مردم اعتماد کنه و از هوگو میپرسه حسابی ترسیده بودی اره؟ هوگو میگه که نترسیده چون انگار هیچی به نظرش واقعی نبوده. اعتقاد داره نباید جسیکا رو وارد این بازی میکرده چون هدرر آدم خطرناکیه. جسیکا میگه که حرف هوگو رو باور میکنه. هوگو میگه که جسیکا گاهی حرفای هوگو رو باور نمیکنه و ادای باور کردن در میاره. گاهی هم از دل باور کرده اما ادای باور نکردن در میاره. حالا کدومش؟ اما جسیکا میخنده و جواب درستو حسابی نمیده. هوگو میگه آدم اگر میخواد کسی رو بکشه باید خودش مثل سنگ سنگین حس کنه. باید توی سرم سکوت باشه. و فریاد میگه سکوت. بعد یه لحظه میگه دیدی چه سنگین و سرزنده بود. میگه که کمتر از یک هفته دیگه کار رو تموم کرده و جنازه هودر روی زمین افتاده. جسیکا میزنه زیر خنده و میگه که هوگو نمیتونه آدم بکشه. چون هنوز نتونسته خودش رو متقاعد کنه و بازیگر خوبی هم نیست. تازه توفنگ هم که دست جسیکاست با این حرف هوگو یک دفعه می پره روی جسیکا که توفنگ رو ازش بگیره و صدای خندشون کل اتاق رو پر میکنه روز گذشته و هوگو هنوز داره دست دست میکنه در حالی که همش ادعا میکرده کارش یک هفته طول نمیکشه اما هودرر هنوز زنده است و هوگو هیچ کاری نکرده و خب جسیکا دائمی مسئله رو بهش یادآوری میکنه هوگو توی اتاق کار هودرره که جسیکا میاد تو هوگو بلا فاصله میخواد بیرونش کنه چون هودرر قدغن کرده که جسیکا بیاد اونجا اما جسیکا از جیبش اسلحه رو در میاره و میگه اومده بود هوگو رو ببینه و اسلحه رو که جا گذاشته بود واسهش بیاره. اما هوگو اصلا اسلحه رو جا نذاشته. هیچ وقت اون رو همراهش نمیبره. هوگو عصبیه، بار سنگینی روشونه هاشه و جسیکا هم این بار رو مدام سنگین تر میکنه. به جسیکا میگه که باید بره و میگه که از دستش خسته شده و جسیکا باید دست از بازی برداره. بعد هم ازش میخواد بره، تفنگ رو بذاره سر جاش. اما جسیکا میگه نمیتونه. توفن مال هوگو و اون نباید جاش بذاره هنوز هم در مورد قصد هوگو مردده میپرسه نقشت رو عوض کردی؟ هوگو میگه که نه و هنوز هم قراره هودرر رو بکشه فقط نه امروز جسیکا اما از منتظر موندن خسته و کلافه شده و میگه اگه هوگو واقعا جدیه و تردیدی نداره باید همین امروز کار رو تموم کنه چون جسیکا دیگه حسله بد اخلاقی های رو نداره. وگو میگه که امروز نمیشه چون هودرر چند تا قرار ملاقات مهم داره و به جیسیکا میگه که کمکش رو نمیخواد فقط میخواد اون مزاحمش نباشه و اونم قبول میکنه اما اسلحه رو میده بهش و میگه که به هر حال دیگه نمیخواد این اسلحه رو نگه داره و هوگو هم که کلاف است و فقط میخواد جسیکا رو دست سر کنه اسلحه رو ازش میگیره و ازش میخواد بره اما جیسیکا میشینه پشت میز هودرر و اطراف رو بررسی میکنه یک کمی راجع به هودرر حرف میزنن راجع اینکه سیگار میکشه و یا اینکه مدام مشروب میخوره و هیچ وقت مست نمیشه در حالی که هوگو اصلا تحمل الکلو نداره اینکه غذاش رو خودش میپزه و اینکه چه قهوه های عالی درست میکنه هوگو قهوه جوش رو بر میداره و میگه وقتی اون بهش دست میزنه شکل واقعی خودش رو داره کلا هرچی که اون بهش دست میزنه شکل واقعی خودش رو داره قهوه رو می تو فنجون و من در حالی که دارم قهوه میخورم نگاش می کنم و حس میکنم این اونه که مزه واقعی قهوه رو تو دهنش داره و اینکه قرار به زودی بمیره انگار دیگه روشنایی وجود نداره. انگار من توی دنیای مصنوعی زندگی میکنم بعد از چند لحظه سکوت جسیکا بی هوا از حقگو میخواد که هودرر رو نکشه هوگو ازش می پرسه پس بالاخره باورش شده. جسیکا سردرگم میگه نمیدونم چقدر همه چیز آروم و بی بوی بچگیامو میده. انگار هیچ اتفاق قرار نیست بیفت. صدای پای هودرر باعث میشه هوگو دوباره از جسیکا بخواد از اونجا بره و تقریبا میکشونتش سمت پنجره تا از اونجا فرار کنه اما جسیکا میگه میخواد بره زیر میز قایم بشه و ببینه اون دوتا چی کار میکنن که توی همین گیرو دار هودرر سر میرسه. ازشون میپرسه که داستان چیه و جسیکا هم خیلی روکراست میگه که داشتم قا هودرل به هوگو توصیه میکنه که بیشتر از اینه مراقبه جسیکا باشه. به هر حال اون شوهرشه. اما جسیکا در کمال تعهقیدی که میشه برای یک مرد تصور کرد میگه که هوگو شوهرش نیست. برادر کوچیکشه. هودرر از این وضعیت خیلی تعجب کرده. مخصوصا از این که وقتی جسیکا هیچ احترامی واسه هوگو قائل نیست، اصلا چرا هوگو باهاش ازدواج کرده؟ اما هوگو میگه اصلا به خاطر همین احترام نذاشتنشه که با جسیکا ازدواج کرده. هودرل خیلی روک به جسیکا میگه که هیچ کاری بازی بلد نیست. و بهتر یه آدم حزبی با یه حزبی دیگه ازدواج کنه و معنی واقعی جسیکا برای هوگو رو اینطوری توصیف میکنه بنظرم تو برای اون یه نوع تجمل هستی بچه‌بورژواهایی که میان توی حزب اصرار عجیبی دارن که یه یادگاری از زندگی گذشته‌شون همراهشون بیارن بعضیا آزادی فکرشون رو میارن بعضیا سنجاق کراواتشون این یکی هم برداشت آورده و بعد عملا جسیکا رو که بهش برخورده از اتاق بیرون میکنه. رو میکنه به هوگو و دوباره ازش میخواد جلوی جسیکا رو بگیره وقتی من رو بین یه زن و یه مرد مختار بذارن من مرد رو انتخاب میکنم اما نباید کار رو برام سخت کرد هودره به نظر میاد منتظر چیزی باشه به ساعت نگاه میکنه میره لب پنجره و برمیگرده و باز به ساعت نگاه میکنه قر میزنه که اگه جا بزنن و امروز نیان باید همه چیز رو از اول شروع کنه اما وقت نداره چون هدف بعضی کسایی که پشتکارشون زیاده و این ملاقات هم اصلاً به نفعشون نیست. به هوگو مشروب تعارف میکنه که هوگو رد میکنه. بعد هوگو میپرسه از مرگ میترسید؟ هودرل از مرگ نمیترسه، فقط برای کاری که میخواد بکنه عجله داره. هوگو با عذاب وجدان زیادی دست و پنجه نرم میکنه. روز ملاقات رسیده. ملاقاتی که لویی تاکید کرده بود نباید اتفاق بیفته. و هودرر هنوز زنده است. علاوه بر اینها خودش هم میدونه که قرار کشته بشه. هوگو میپرسه حتما خیلی ازشون متنفرید. اما هودرر خیلی راحت میگه واسه چی؟ من مخالفتی با قتل سیاسی ندارم. خیلی هم متداوله. هوگو واقعا حیرت کرده. از هودرر میخواد که براش نوشیدنی بریزه. هودرر میگه هوگو هنوز جوونه و راه زیادی داره. این کار پیش هودرر فقط یه مرحله از زندگیشه. اما هوگو میگه وقت فکر نمیکرده که میتونه به پیری برسه. اون هم خیلی عجله داره درست مثل هودرر میگه خیلی وقت حاضر بودم یه دستم و قطع کنن و در عوض یه مرد حسابی باشم. خیلی وقتای دیگه هم بوده که اصلا دلم نمیخواست از دوره جوونی بگذرم هودرر میگه حرفای هوگو رو نمیفهمه چون خودش انگار یه راست از بچگی رسیده به پیری هوگو میخنده و میگه این مرض برژوه هااست و دوتایی می خندن هودرر با حالت به هوگو پیشنهاد میده که کمکش کنه تا توی حز پیشرفت کنه. اما هوگو میگه که کمک هودرر رو نمیخواد. هودرر میخواد جواب بده اما صداهایی که از بیرون میاد حواسش رو پرت میکنه و نشون میده که کسایی که منتظرشون بوده رسیدن. میره لب پنجره و هوگو هم دنبالش میره. افرادی که هودرر قراره ملاقاتشون کنه رو میبینن. این دو نفر یکیشون فردیه به نام کارسکی که نماینده حزب پانتاگونه و شاهزاده پسر پلیعهده. یادمون یادمونه که هودرر به حزب پیشنهاد داده بود که حزب خودشون با حزب پانتاگون که برجوها بودند و ولی عهد که فاشیست بود متحد بشن و دلیل این قرار ملاقات هم صحبت در مورد همینه کارسکی و شاهزده که وارد شدن سلیک و جورج هم همراهشون بودند. کارسکی خیلی بهش برخورده که تفنگ رو پشت اومده دیدن هودرر و این رو هم مطرح میکنه هودرر هم سلیک و هم جورج رو مرخص میکنه کارسکی بعد چشمش به حقومی افته که هودرر توضیح میده که منشیشه. اما کارسکی هوگو رو شناخته و با تعجب ازش میپرسه شما با این آدم ها هستین و هوگو تایید میکنه. کارسکی میگه که تازگی با پدر هوگو ملاقات داشته و میپرسه هوگو می‌خواد بدون حالش چطوره یا نه قاعدتاً برای حفظ ظاهر و رعایت ادب هم که شده هوگو باید میگفت آره اما هوگو که مسته میگه که نه نمی‌خواد بدونه کارسکی میگه که هوگو خیلی بدبخت اما هودرر بحث رو با تعارف کردن کنیاک به شاهزاده و کارسکی عوض می کنه. کارسکی کنیاک رو رد میکنه، اما شاهزاده قبول میکنه. کارسکی تبل توخالیه پر از ادده و حسابی منم منم داره. اصلا هم دلخوشی از حزب نداره. اما شاهزاده به نظر آرومتر و انعتاف پذیرتر و مشتاق به مذاکره واقعی میاد. حتی با وجود اینکه اون هم از حزب خوشش نمیاد. کارسکی صحبت رو اینطوری شروع میکنه. پری روز آلمانی شما به افراد ما شلیک کردن این حرف اصلاً هودرر رو دست دستپاچه نمیکنه. کارسکی توضیح می‌ده که افراد حزب پورتاریا به یک گاراژ مهمات که مال حزب پانتاگونه حمله کردند. هودرر به سادگی می پرسه که افراد موفق هم شدن یا نه و وقتی کارسکی میگه آره، هودرر با خوشرویی میگه پس به هر حال یک کاری انجام دادن. به نظر میاد کارسکی و ممکنه بحث بالا بگیره. اما شاهزاده پیشنهاد میده که برن سر اصل مطلب. هودرر ترجیح میده اول موضع دو نفر دیگر رو بسنجه. برای همین میگه که خودش پیشنهادی نداره و آماده است تا حرفای اونا رو بشنبه. مسلمن کارسکی جوش میاره و میگه که اگه میدونسته هودرر پیشنهادی نداره وقت گرانبهاش رو واسه این قرار تلف نمی‌کرده و پا میشه که بره. خیلی جالبه اما هودرر هیچ تلاشی برای برگردوندن کارسکی به میز مذاکره نمیکنه. بلکه این شاهزاده است که سعی میکنه کنه اوزار آروم نگه داره و سخنرانی بلند بالایی رو شروع میکنه که وضعیت ایلریا رو کامل شرح میده. این سه حزب که نماینده هاش امروز هم را ملاقات میکنن، همیشه با هم دشمن بودن خود کارسکی پارسال دوبار علیه ولی اقدام به توطعه کرده این حزب ها دلایل زیادی برای دوستی ندارن اما لازمه که برای منافع ملیشون هم که شده احساسات رو کنار بگذارن حتی اگه عقایدشون با هم فرق میکنه. مثلا حکومت همیشه به خواسته کارگرها که خواسته حزب پرولتاریام هست اهمیت میداده، اما توی شرایط حساس کنونی و در برابر روش ترسناک آلمانی ها اون رو در اولویت دوم گذاشته که خب حرف خنده‌داریه چون حکومت طرف آلمان رو گرفته و با شوروی که حزب پرولتاریا طرفدارشو داره میجنگه. شاهزاده میگه که لازم ایلریا مثل یک ملت واحد به نظر بیاد. نه اینکه مردمی که عاشق کشورشون هستن به خاطر عقاید مختلف از هم دور بمونن. و خوشبختانه شرایط امروز باعث شده هر سه طرف نسبت به هم درک بیشتری نشون بدن. نه حکومت و نه حزب پانتاگون دیگه نمیخوان به جنگ ادامه بدن و بدیهیه که هر سه طرف نمیتونن جدا جدا با دشمن صلح کنن. پس لازمه که یه اتحاد تشکیل بدن و رهبرهای این اتحاد رو از بین حزبای خودشون انتخاب کنن. در نهایت کل این سخنرانی بلند بالا به اینجا ختم میشه. حزب پانتاگون و ولیعت پیشنهاد هودره رو قبول کردن و مایلن حزب پولتاریا هم به این اتحاد بپیونده. هودره بدون اصرار خوشحالی یا تحت تاثیر قرار گرفتن از این موفقیت بزرگ بلافاصله چونه زدن رو شروع میکنه. خب حالا قبالش چی به ما میدین؟ کارسکی توضیح میده که قرار به زودی کمیته ملی مخفی تشکیل بشه که چهار نفر از مشاورین ولیعهد توش حضور دارن شیش نفر از اعضای عالی حزب پانتاگون و دو نفر از اعضای حزب پورکتاریا هودرر با تمسخر وانمود میکنه که تعجب کرد تا از دوزده تا؟ کارسکی دلایل به ظاهر منطقی برای این تقسیم بندی داره حزب پانتاگون 57 درصد جمعیت کشور رو تو خودش داره. علاوه بر این که بورژوا هم خب خوب هستند اما پرولتاریا کمتر از 20 درصد جمعیت رو تشکیل میده پس بهترین کار اینه که افراد این دوتا تا حزب با هم قاطی بشه هودرر برداشتش از این حرف قاطی شدن نیست بلکه اینه که حزب پرولتاریا تحلیل بره توی حزب پانتاگون و کارسکی هم مخالفتی با این برداشت نمیکنه. فقط میگه که این بهترین راهه هودرر قطعا موافق نیست اعتقاد داره اینطوری یکی از سه طرف رسما از صحنه حذو میشه و عملا اون دوزوی که اول صحبتش بود توی کمیته بهشون بدن هم فرمالیته است کارسکی با تمسخور میگه مجبور نیستن قبول کنن اما شاهزاده سعی میکنه با وعدهوعید چیزایی که خواسته حزب بوده مثل لغو قوانین مربوط به سندیکای کارگری هودرر رو راضی کنه اما هودرر خیلی بیشتر از اینها میخواد تا حالا تظاهر به آرامش میکرد اما حالا که صحبت های مذاکره رو شنیده دقیقا میدونه که چی باید بگه و چطوری باید رفتار کنه. پس پیشنهاد جدیدی میده. یه کمیته مرکزی 6 نفره که سه نفر از اعضای اون رو اعضای حزب پورتاریا تشکیل میدن. حزب‌ها دست نخورده باقی میمونن ولی با رأی این کمیته توی عملیات مشترک با هم شرکت میکنن. کارسکی منفجر میشه و داد و بیداد را میندازه که حزب بی پول و بدبخت پرولتاریا میخواد بی درد سر اکثر کمیتر رو داشته باشه و پا میشه که مذاکره رو به هم بزنه و بره هودرر هم جلوش رو نمیره اما شاهزاده ساکت و بی حرکت به هودرر چشم دوخته و مشخصه که داره فکر میکنه کارسکی خون خونش رو میخوره اما هیچ حرکتی هم نمیکنه و هودرر هم که حالا تو موضع قدرته شروع میکنه به توضیح دادن که این مسلحت وطن واقعا دغدغه اصلی کارسکی و شاهزاده نیست که اگه بود سال‌های پیشم باید وجود میداشت بلکه همه اینا به خاطر اینکه ارتش سرخ آلمان رو توی استالینگراد شکست داده و ولیعهد که تا حالا فکر می کرده آلمان برنده این جنگه و هیچ اهمیتی به مردم نمی داده حالا که ورق برگشته میخواد با صلح کنه تو پرانتز بگیم که ارتش سرخ نیروی نظامی شوروی بوده که توی جنگ جهانی دوم نقش خیلی خیلی مهمی بازی کرده بود و در نهایت هم باعث شکست آلمان ها شده بود. از اون طرف حزب پانتاگون با وجود اینکه ضد آلمان بوده، ضد شوروی هم بوده و مدام توی گوش مردم می‌خونه که ایلریا به تنهایی، ایلریا باید برای خودش کار کنه. و حالا که روسها دارن پیروز میشن و به زودی ارتش آلمان رو از ایلریا بیرون میکنن تنها حزبی که قرار از طرف روسها حمایت بشه حزب پورتاریاز و قطعا چیزی تا نابودی حزب پانتاگون و دولت ولیعهد نمونده حالا اگه با هم متحد بشن میتونن قدرت رو مشترکن دست بگیرن یا یعنی اینکه میتونن قبول نکنن و نابودی خودشون رو به چشم ببینن شاهزاده و کارسکی به شدت تحت فشار قرار گرفتن. کارسکی مدام میگه که هودرر آدم پستیه و اصلا نباید به این جلسه میومده. شاهزاده رو هم متهم میکنه به بیغیرتی اما شاهزاده که ترسیده میخواد به هر قیمتی که شده یه جوری خودشو از این مخمصه بکشه بیرون. ترجیح میده با پشت کردن به کارسکی با هودرر صلح کنه و میگه تصمیم اون و کارسکی هیچ ربطی به هم نداره و هرکی جدا تصمیم می‌گیره. هیچی برای بهتر از این با سبکی و شعف خاصی با عصبانیت کارسکی تفریح میکنه و بهش میگه که وقتی دولت و حزب پرورتاریا با هم متحد بشن عرصه حسابی به حزب پانتاگون تنگ میشه و وقتی هم که آلمان ها شکست بخورن اون حزب از هم میپاشه ولی حالا که کارسکی دوست داره پاک بمونه دیگه حرفی نیست کارسکی مثل بمب ساعتی میمونه و هر لحظه امکان داره از عصبانیت بترکه فریاد میزنه که حزب پانتاگون سه سال تمام با آلمان‌ها جنگیده تا استقلال کشور رو حفظ کنه و هزاران نفر از اعراضش رو از دست داده اما حالا های آلمان و شوروی دارن ساخت و پاخت میکنن و اونا رو یه گوشه قتل میکنن هودرر هودرار آرامش خاصی میگه کارسکی شما این بازی رو باختید چون باید می‌باختید. ایلریا بهتنهایی تنهایی این مدل رجسخونیا واسه کشور کوچیکی مثل کشور ما که بین قدرت‌های بزرگ خیلی بده و از کارسکی میپرسه که شرایط رو قبول میکنه یا نه کارسکی که در مونده شده میگه که صلاحیت لازم رو نداره که به تنهایی تصمیم بگیره اما هودرر بیشتر و بیشتر بهش فشار میاره و میگه که عجله داره میگه که به کارسکی اعتماد داره چون کلا دوست داره به مردم اعتماد کنه و جزء اصولشه و میدونه که اون میتونه اعضای حزبش رو متقاعد کنه پس اگه امروز موافقت کنه هودرر هم فردا میتونه با رفقای حزب خودش حرف بزنه و زودتر کار رو تموم کنه همه چیز داره خوب پیش میره که یهو یه هوگو که یکم مسته و کلش داغه از جاش بلند میشه و رو به هودرر میگه چطور جرئت میکنی هودرر از این حرکت ناگهانی جا میخوره و از هوگو میخواد که ساکت باشه اما هوگو ادامه میده اینا خدایا اینا هموناییاند که پیش پدر من میومدند همون آدمهایی پس فطرت دهن که حتی منو تا اینجا تعقیب میکنن شما حق ندارید اینا به همه جا نفوذ میکنن اینا خیلی قوی ان هودرر میخواد هوگو رو ساکت کنه اما هوگو رو میکنه به کارسکی و شاهزاده میگه که در مورد این توافق حزب اصلا با هودرر موافق نیست و بهتره که این دو نفر گول هودرر رو نخورن هودرر یکم دستپاچه شده اما خودش رو آروم نشون میده و با آرامش به کارسکی و شاهزاده میگه که حرفای هوگو اهمیتی نداره و اینا فقط نظرات شخصی خودشند. طبعا اونا هم حرفای هودرر رو باور میکنن نه هوگو. هودرر میخواد هوگو رو بیرون ببره اما هوگو عقب میره و با پریشونی میگه به من دست نزنید. دستش رو روی جیبی میذاره که اسلحه توشه. میگه نمیخواید به حرفای من گوش بدید؟ کیک دفعه صدای انفجار شدیدی همه جا رو به هم میرزه. شیشهای پنجره رو میشکنه و چارچوب هاشون رو از جا میکنه. هودره فریاد میزنه رو زمین و شونه های هوگو رو و دوتای روی زمین میافتن. شاهزاده و کارسکی هم همینطور چند لحظه بعد سلیک، جورج و لئون یه محافظ دیگه دوون دوون توی اتاق میان همه به هم کمک میکنن که از جاشون بلند شن کسی به جدی ندیده فقط کارسکی یکم با شیشه زخم زخمی شده هودرر به جورج و لئون میگه که باق رو بگردن چون هر چیزی که بوده نارنجک یا خونپاره از خیلی نزدیک انداخته بودنش لئون و جورج از اتاق بیرون وجوه سابی پریشون و عصبانی مدام قدم میزنه و پیش خودش میگه بیشرفا، رزلا، چطور تونستن اودرر رو میکنه به شاهزاده و کارسکی و به خاطر این اتفاق اظهار تاسف میکنه و میگه که هدف اونها هودرر بوده و اون انتظار همچین چیزی رو داشته جسیکا نفس نفس زنان میدوه توی اتاق و اولین چیزی که میپرسه اینه هودرر کشته شد هودرر بهش اطمینان میده می که حال همه خوبه سلیک پیشنهاد میده که همه برن طبقه بالا چون ممکنه دوباره چیزی بندازن در زم، زخم کارسکی هم نیاز به پانسمان داره هودرر شاهزاده و کارسکی راه میفتن که برن هوگو هم بلند میشه اما هودرر به سردی بهش میگه تو نه چند لحظه به هم خیره میشن و بعد هودرر روش رو بر میگردونه و میره هوگو همچنان عصبانیه فکر میکنه حزب بهش خیانت کرده و دیگه بهش اعتماد نداره که کس دیگه ای رو فرستاده تا کار رو تموم کنه. عزت نفسش حسابی خدشه‌دار شده، برای خودش نوشیدنی می‌ریزه و زیر لب میگه بی شرفا. و جورج یکم سر به سرش میذارن و دوستانه بهش میگن حالا دفعه اول چه که جا دیده. یکم که بگذره واساش عادی میشه و حتی ممکنه خوشش هم بیاد. هر حال تنوع دیگه. هوگو میگه این کسایی که بمب رو انداختن خیلی بی اما اسلیک و جورج با خنده میگن که دیگه به خاطر این چیزا عصبانی نمیشن تازه اون اصلا با همین نون در میانه. چون اگه جونه هودرر تو خطر نبود که دیگه اونها اینجا نبودن هوگو میگه دارم میخواست بخوابم و ببینم مثل اسلیک شدم ببینش 100 کیلو گوشت اونباق اندازه یک دو مغز نداره مثل یه نهنگ واسه همین اینطور اتفاق قلقلکش میده فقط سلیک و جورج به خنده میافتن. هوگو دوباره برای خودش نوشیدنی می ریزه جسیکا می‌خواد جلوش رو بگیره اما هوگو میگه دلیلی نداره نخوره. اون بی شرفا مأموریتش رو ازش گرفتن. جسیکا ازش می‌پرسه هودرر مأموریتت رو ازت گرفت و اینطوری به هوگو یادآوری میکنه که نباید جلوی و سلیک حرفی بزنه. اما هوگو مستر از اونکه بفهمه. هودرر که از هودرر حرف زد. اون برای من آدمی که بهم اعتماد کرده. رو میکنه به اسلیک و تلو تلو میخوره. بعد معمولیت میدن تو هم داری جون میکنی که انجامش بدی و درست وقتی که داری موفق میشی میبینی دارن به ریشت میخندن و اون هم دادن دست یکی دیگه جسیکا نگران شده و میخواد هوگو رو ساکت کنه با لبخند به سلیک و جورج میگه که هوگو داره در مورد اون حرف میزنه و همش میگه چرا جسیکا بهش اعتماد نداره هوگو سرش رو تکم میده میگه نه تو به من اعتماد نداری هیچکس به من اعتماد نداره حتما این چیزا تو من هست دیگه جسیکا ملتمسانه است حقوق میخواد که برن خونه. حقوق باز رو میکنه به اسلیک و میگه من اسلیک رو خیلی دوست دارم چون هم قویه هم اصلا فکر نمیکنه. حالا هم میخوام یه نصیحتی بهش بکنم. بقیه حرفش بیشتر از اینکه با اسلیک باشه خطاب به خودشه. تا وقتی خیلی جوونی ازدواج نکن. باری که نمیتونی ببری رو دوشت نذار. همه چیز خیلی سنگینه. معموریت در خور اعتماد. اصلا کدوم اعتماد؟ توجه جورج یه خورده جلب شده. میگه کدوم ماموریت. هوگو اینطوری جلوش در میاد که اینا رو میخوان از من حرف بکشن. بیخود وقتتون رو با من تلف نکنید. من نفوذناپذیرم. میدوه و میره جلوی آینه. از قیافم که چیزی بر نمیاد. خدایا، باید معلوم باشه. جورج دوباره میپرسه چی معلوم باشه. هوگو با حرارت میگه که این که یک ماموریت مخفی دارم. جورج و اسلیک با تردید به هم نگاه میکنن. نمیدونم باید این حرفا رو جدی بگیرن یا نه. اما جسیکا باز هم هوگو رو نجات میده. رو میکنه به اون دو تا و میگه که بیخود سر خودشونو درد نیارن جسیکا بارداره و الان هم هوگو توی آینه نگاه میکنه ببینه پدر شدن بهش میاد یا نه. ماموریت مخفیج همینه. هوگو دنباله حرف جسیکا شروع میکنه به یه سری دریبری گفتن در مورد پدر بودن. اسلیک با تاسف بهش نگاه میکنه و به جسیکا میگه که نباید بذاره هوگومش مشروب بخوره. جورش هم موافقه. هوگو هنوز داره هزیون میگه. پدر خانواده پدر درست استامی نیست. آدمکش هم ی درست استامی نیست. ولی مرده یه مرده درست حسابیه. میفهمی چی میگم؟ من هیچ چیز درست حسابی نمیتونم باشم جز یه مرده درست حسابی زیر خاک. جسیکا که میبینه هوگو گوشش بده کار نیست یه راه دیگه در پیش میگیره، دوباره گلاس رو پر میکنه و دست هوگو میده. هوگو هم یه نفس سر میکشه. دست میذاره روی پیشونیش و میگه این تو خیلی جنجاله. رو میکنه به اسلیک. چقدر باید توی کله تو آروم باشه. اصلا سر صدا توش نیست. تاریک. من دلم میخواد بمیرم. اما به شرط اینکه مردهها بازی در نیارن دروغی تو کار نباشه فرض کنی دادن بمیره بعد تازه به فهم مرده ها زندن و فقط ادای مردن رو در آوردن تلو تلو میخوره و روی زمین میافته جسیکا و لبخند رو میکنه به اسلیک و جورج و ازشون کمک میخواد تا هوگورو که بیهوش شده ببرن توی تخت خواب خب اینجا بخش اول این قسمت و نمایشنامه دستای آلوده به پایان میرسه این نمایشنامه چون خیلی طولانی بود تبدیل به دو قسمت شد و شما میتونید ادامه این قسمت رو توی قسمت بعدی که همین الان روی فید پادکست تلف قرار گرفته بشنوید سریع برید بشنوید امیدارم که نظر بدید امیدوارم که نمایشنامه رو دوست داشته باشید و از پایانش هم راضی باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر